مطرح فرمودودن راجع به رشوه بود ارسو که در روایات ما و حتی در کلمات قدم های اصحاب ما این دسته بشته خیلی واضح و منقه نیست اصلا روایاتی که ما داریم عنوان هر رش آفت خوف هر رش از این وقت اصطدا منشه زهور که و این بحث رو ما این مهداری مسخوطنان بذاشتیم کلمات رو دو حالی هم زید شده ناغاری محمد شیخ و از شیخ و حاضر بحثی دونستاز قضاوش بحث قضاوش مثل بحث رشه نیست تو روایات ما بعضی از روایات درش دلایت نکنه هم قردم های از ما متعبس شد یعنی این بحث با بحث رشه همون مرمون شیخ انساری مثل بحث میگم رشه رو که، در بابه قزاوت هست پولی که گرفته میشه به چند قسمت تقسیم شده که ما یکی یک ان شاء الله میگیم اولش اجرت بدن استفاده اجرت رو ولو ظاهرا به متخاصمین بغتی میشه به طور خاص یه پولی یه حدی بدن که این اونها قضاوتو باشه تا کلی نیست که اجرت شامل بیت المال هم بشه صدقه و اجرت اغلب به ظاهر لباس شما متخاصمین این معنا از بیکلما، مثلا پادشاه یا بلغ قدیم پادشاهی اوردنزو نظام از یک شخصی بخواد که هر پرونده‌ای که برات میذاره، چند اضافه اون بشه، اونم یک چیز توی فامیل‌ها شما هست. در مقابل هر پرونده کسه راه اجرت رو اونجوری می‌گیرید. یعنی در مقابل قضاوت یه پولی به او داده بشه. این مراد از اجرت، البته اغلب انصراف اولی شویده که از بیکلما نباشه از طرف این. دو مسئله ارتقاء منبع المال. پس یک اجرت دوم ارتقاء یعنی به اصطلاح از ریال مال زندگی بکن مسئله سوم خب البته این مثلا که رشوه است که پول بهش بدن به نفع یک طرف حقوق این که رشوه است. مسئله 4و هدیه است. هدیه بده به حافظی آیا در این مسائل دو طرف محله کلا هم دادن هدیه هم قبول هدیه ممکنه مثلا بگیم دادن هدیه به قاضی حرام نباشه اما قاضی نمیتونه هدیه رو قبول بکنه این مسئله چهارم مسئله پنجم پروردن اما به نظر من خیلی نیاز بشنه بود معامله محاواتی با قاضی مثلا این خانه‌ای 200 میلیون میره خونه رو به قاضی میشه 50 میلیون از اون قیمتش تر فرودیه. میگه قیمت رو پایین تا مثلا قاضی حالا یا حکم کنه یا بندتش هر کدوم که شد. این که در کتاب شیخ در مصادر شیخ آمده. این عناوین ذکر چون برمون در اینجا متعرض نه به تفصیل ما هم گفتیم آنطور باقاعده ایشان متعرض این بحث بشین. بنابراین فعلا بحث به حقیقت رو فعلا کردیم. رشتیم بعدش رفتیم توی مسئله پوله که قاضی مویده اون رسمتی که قاضی با من رشته که حرامه بله یه اجماع مسلمین این بحث بزن. اون بحث دومش اونجاست که اجرس باشه اگر قاضی اجرس بگیره برای قضاوت یه نکته ایران یه فضل سرمانه خبیه استاد من چرا این شد کردن؟ عبادیسی که در اول فرموندن چه در پندیج تا اول دورای اولش ده پس که این در فقهی اصول بعد ها در برنامه موالیش شده اول شده اشتباهه است اصلا چون مسوال در بحث اجرت ایشون ظاهرا خیلی که مشذذ خیلی عجیبه شده در درس مشذذ صحبت کردن ضعف درس خواب شده یا دیر دیشان، یه تحلیل دیگه هم ایشون دارن از بود نکتا اون تقریب مراجعه ببینم چه کار اما ظاهر عبارتش این است که ایشون اخذ عجرت برقاقی حرام میدونم و حتی پرمونه اصلا تأرازنه در عنوان اخذ عجرت اما این که عنوان اخذ عجرت نداره اصلا نیست که این کتاب نیست نیست تو در درست بختنیشون اما از ظاهر عبارت برقیشان بل ایشون مسلط به حرمت درست و ظاهری اصطلاحات اینه. لکن معنای بعد ایشان اعرش شد ایشون به جواز اخلاق در کتاب مبانی تشکیل المنها چه جایی خواستم مراجعه کنم ایشون مبحث اخلاق و در تو مبانی مبانی تشکیل المنها ورد، مختصر دو صفحه نوشته. سوالش هم میگم الان یه دو صفحه‌ای در در اونجا ایشان مباحث اخلاق و جواز کلی اصل اولی که عمل هر انسان مسلمان محترم میتونه اهل خود بذار قاورد کنه اگر دلیلی بر مجانتیات و متعربه همه ادله شدن این روضی که روزمونی می خونین ایلامم رد کرده به ذا بنای ایشان بر این است که اهل عزت بر بر قضاوت جائله طرفین به پول بدن که او بگه تو قضاوت بکنه به پولش بدن شاوینم قضاوت ما کنه گفتن ایشون فرنده جویید اصلا که مسئول فقاهه ظاهرش اینه که جایز نیست اما این طور مال قدیم ایشان است. اعتبار به همین کتاب جدید ایشان مبانی فقهی داره. مثلا صلا نماز پایانیش قرائت بی‌جوازه. ایشون می‌ترمم نظریه قبلی دوربینین که اندرون از خویشتن از دستایش از نظر ایشان در اونجا معناش ایند که جایزه اخذ اجرت اینا توجه فرمایید. ما گاهی اوقات مطالبی ورایشان حالا ایشان مختلفه زمان های این راجعه به این مسئله حالا برای اینکه مقدار به جزور مسئله برگردیم در این مسئله اخت و اجرت بر قضا بر، یکی متعرض روایات میشین تبقیه قاعدتون روایات در اینجا داریم، ادمای اصحاب ما هم مطلب دارن در اینجا بعد از اون متعرض ادمای اصحاب. راجعه به اجرت برای قاضی از سه راه وجود داره یک راه این است که خود اجر برای فضاورت حرامه خود عنوان اجرامه این که اون روایت هم داره و ها اجر قضا که اجور قضا هم صحب سرام داره شد مثل این اجر قاضی این یک راه نیست عنوان دیگر این اجر قاضی رشوه هست ما دنباله عنوان اجر قاضی نیستیم خوی روی که قاضی میگره تبه رشوه برشوه این راه دوم، رای ثبوت این از که قضاوت اگر برش واجب باشه چون قضاوت واجبه اصل اوجه بر برواجبونه میشه پس سه نقطه اساسی حالا اون دو سه جور میشه تقریبشتر این که بیتون واجبه یکی که مثلا مقام قضاوته قضاوت این مقام بسیار بازاییه و جلسه نگرس هم لا یز اسوه الا نویی هم او رسی و نویی او حالا که ما دو سه سه رواز بیم خیلی مشهور شد در حضی سنه اما هم همه شون در ایف و سنه خدمتونی که فهموندن اینجا میبین وشت هم اصلا کردن که مثلا مقام قضا وقت خداوند به یه فیغمبر قرار دیدن به این مقام بسیار بالاییست و عظمت مقام اختضاعی کنه که مجانهی باشه پول به اضاعه او ندیم پس سه راه وجود داره یکی راه به عنوان قجرت و قضا و عجر و قاضی یکی به عنو ایکی هم به عنوان اینکه اخت بر واجبات، یا برخصوص خصوص وقت به خاطر عظمت مقام هم یا به خاطر مثلا قول لا اصل بخونم علیه ها اجرمی که اگر رسول الله اجر نمیگیرم هم مواقعی دید راه های سگانه ای وجود داره ما الان در روایاتی که متعرض میشیم با هم دیگه بیشتر مسئله اخت عرضت برواجبات و میگذیم در محل خودش من رو ا اگه دو تا راجع به اون نوشتن خیلی موجز نوشتن فوق العاده را که در محله خود خاص ما وجود مرا فلسفی وجود داره که هم اشاره کردم یه بحثی این بحثا قانونیه بحثی بسیار لطیفه بعد از شما مثلا قرارداد حقوقی ما می‌خویم در قوانین دنیا کلا یه بحثینه که اصولاً هر جا قانون یک تکلیف الزامی قرار داد اخلاق وجود داره نمی‌شه چه الزام به چه الزام به تحر. چه واجب باشه چه حرام باشه اصلا به طور کلی یه بحث قانونی شما در دنیا متشک مطرح رو کنه بحث لطیفیه ما الزام هر جور الزام نیست مثلا مثلا گفتن واجب نیست چه اجازه‌ای باشه قانون قانون در قوانین وا هم هست اگر قوانین اورژا ما گفت مثلا واجب است برای مثلا این پلیس مثلا حق نداره پول دیگه از مردم از مردم هم نداره پول اصلا وجوب یک شی شئ... شما مثلا مکلفین بیاییم در این سر اداره ساعت معین بریم حقوق شما بیا از مردم پول بگیریم میگه اصلا وجوب منافی با همگه رو وجوب مصابق با آدم. بلا... آدم. مثلا زیاد بگیریم واجبه ها سیگه رو میسه به لبا دادن اون بالزان واجی بی و حلوم میگن رو نگو نگو خودشون را نه خودت واجو ما که چه واجو می‌دهیم نه چی وقتی شما واجو از نظرم اصلا کار به هم نداشته باشه اصلا به یک شخص به یک بر افراد کوشه که کوشه را تمیز نگه داره یکی صد رو پول بگیره می‌ماند تمیز نیست گناه ندارد چون واجبه وقتی امتحان شد در گفتم مشکلی پول گرفت. اون بحث دیگری چون گفتن اشاره می‌کنه اونم هم همینه یعنی نوث شده یکیش هم پزشکی مثلا از اولو ما قاله که دکتر هم نداره خصوصی واجب واسه صناییه واجب واسه نظامیه که نظام در اون هم تصرف کرده هر کدام میاد ایشون بحث خودش قرارداد یک بحث قانونی نیست در هر جا که الزام آمد اشاره این انذار مخصوصی که شما حتا پول نداری یا الیزام بکنه به فیل یا الیزام بکنه به تن بگه آقا من شراب این پول میگرم همانه چون شاره بوده شراب نخورید یا پول گرته مناشید این یک بسه قانونی بقوقی فعال یا حسولن وجود اینشالله خواهد با مرمان اینشالله از مردم محقی اسفانی اینشالله از مرمان محقی اسفانی شیش یا هفت وجود میکنه که اصلا وجود مقایر با گرفته پوله طبیعت حجوم و طبیعت حرمت هر جا که الزام بود نمیشه کنگیره چه در حرمت شاره با شما حتما با شراب نخود به پدر روی من شرام نخواهد من خود بوده همون هم رو خود بوده چون تکالیف الزامی طبیعتشون باید مجالی باشه چون در اختیار پرخونس که انجام بریان هم ده. نه این همه الزامیه خب این بحث ها شرام بعد اینجا این بحث ها عدد قائده الان از اجمال صحبت میکنیم تفسیر پیه مسئله هنجام اما روایاتی که ما در اصحاب داریم از خدم این روایات رو در عباب آده هرغازی مرحوم شیخ هر را آمدید خود شیخ هر را تحریم و رشیات فرحوب و رزق من السلطان علال قضا پتواه ایشان اینه البته مرحوم شیخ در اینجا متعرض عنوان اوجهت نشد به رضا ساده من فکر می کنم که چون میگن میگه اوقات ادب و مراعات این با بزرگان فکر میکنم اگر مرحوم شیخ حر عامری قائل به حرمت رزق باشه در اجرت به طریق اونا خاصه نشوره وقتی رزق من از سلطان حرام باشه به نظر من نظر اون که گرفتن اجرت به طریق اولا حرامه چون از طرفین میگه وا که از نظام میتونه بگه از طرفین به قول اون سوزان هم مشکل داره ممکن اون سلطان نه این ایشون مطلق گفت چون مطلق بوده نداره این سلطان عادیه مطلق داره گفت خود ایشان اگر اجازه بفرمایید یکی در زیل حدیث شماره دو. <تصفح> <تصفح> دوم در زیر حدیث شماره نو خود ایشان یک وجه جدی رو در رواست اوزه رو بگذارد حضرت ایشان رو بعد بخونی حدیث اول محمد نعبوب کلینی این حضرت کردیم ای به باید صورت دیروز اشاره کردیم در کتاب کلینی در همین جلدش خفصش که, که در باب قضا و صورت باب و اخت دل بر و رشا ظاهر عبارتی ایشان ایشان رو عجرت و انت کرد این مرحوم خدوق عنوان باب زده از اجابی اینه که در این باب هم فقط همین روایت هم آورده با دیگه نه آورده کلونی با دیگه هم ایشون فقط همین آورد کراحت و اخذ رزق علم قضا پس مرحوم کلونی اخذاره زمن سلطان رو به معنای اجرت گرفسه یا رشه گرفسه مربون صدو هم کلمه صدو در اشتا صدو کرده چنه داره که صدو صحت بر کراهت داره صاحب و صاحب قبول کرده برسه به شرمه سلطان حرام نه روشن شد که فهم این آقای هم محمد ابن عبوده ام امن محبوب انه ام عبدالله از سنان. این روایات زیاد و میگرده به کتاب ابن محبوب که از کتاب کتاب ابن محبوب در زمان خودش مثل کافی از زمان ماست جزو کتاب بسیار مشهور و محروف و محور مراجعات پواه ها و این کتاب از کردین نصفش اختیار قومی ها بوده در اختیار قومی ها مرحوم کولینی و مرحوم شیف صدو و طبعاً در اختیار شیف توسی هم بوده که همین نسخه قومی رو خیلی وقتا کرده. به علاوه این نسخه به تقریر صحیحی که قوم رسیده طور متذکل داره یه طریقشه این طریق ایضاح ها است صادو هم مستقیما از خود کتاب حسن مروان عمل کرده و حسن مروان کتاب متذکل داره از ایده زیادی نقل کرده که خصوصا در جای که اون قاعده حدیثی که از ما عبدالله بن سنان حدیث به لواله سند صحیحه که بحث شده قال سئل ابو علیه السلام احتمال این احتمالی که شاید سائل مثلا چیئه نبولی سئلتون از سئل ابو بین قریته این کتاب و ما بین قریته این نوشته اما نه خودو بیان که یه من سؤال بسیار بین قریته اما این رو من ای بین هم نسخه بل بود فریقه در کجا آمده اما اینی که الان در و به این قریطه اینه یه خبه من از سلطان اول قضا از رزق ظالم به نیست آل لالکه سخت یا لالکه سخت در نصف یستدیو لالکه سخت از کردم این سه جور بنداش شده یکی اینکه این رزق رو معنی و حجرت گرفتن که اوی برغوظات صحبت بشه <تصفيق> یکی به معنی صحبت و کراحت گرفت. رفت در قوم به معنی کراحت یه. خوب بقت بکنید چون ما بعدها پتوایی نسبتاً زیادی از اصحاب داریم که کراحت دارند. رز و در باب قضاوات کراحت داریم شاید مثلا برای شما تجربه ها احتمالا قومی ها بزرگان با محصول استادیشان ابن الورید اصلا حدیث و هم ببرد کراحت کردن و این مبنا و این عده از که بعد هست یعنی من همیشه از میکنم مهم این نیست قوایت رو بخونیم مهم رفت دادن اینه. چون این واقعا برای نسان سآلنگیزه جایی که برای تصریح میکنه زالت صحت رو تاشو بگه که در چیزه مانا دا بله من که شما هم ترجیحا دارم الان من چند آلا عبارت در شو می کنم بعد که به استبعاد به اصطلاح چیز بشه یعنی استبعاد رفع این استبعاد بشه نگم میخوام الان به اصطلاح considere روشه بله به خاطر هم مت به عقیده بود که بره. بره. قال و خیلی خوب، لیکن برای بدون مار اتداوند کنیم. و شیخ در مکاسب به نهایی اضافه می‌نماید و اصلاً لشی از من امور سلطان، من الامارات و جباری و قزاق و غیر از دلک من آن و اولویت حلال برسه. اندیک به لحاظ دلک علی ارزاق و جواری و سلام. فاکن که دلک از جهت سلطان آدیل که دلک حلالنله. اونی حلالنله او با این سلطان نمی‌شود. فاکن از سلطان سلطان جو ببینیم فرد رخ خیلطه لبو پی قبول داره که این جده این جده نمید لن لبو حضن فی بیت المار بود دقیقه این چیزه میگه هر تا اگر سلطان جارم بود اشتار نداره پس که دزا سرون هم داشته بباریت رو هم بکنه به کراه بقیقه و چگاهیش بکنید یا سلطان عاده یا سلطان جارمه مثلا مثلا عبارت دیگری که در اینجا هست، این که در باب رفته آمده است که مثلا در مکاسب نهایی شیخ در نهایی ولا بحث به اخذ الاجر و رزق اجر غیر درست هم علال حق و الغذاه بین الناس جرت سلطان العاده لابست و ما قدرنا فامام جرت سلطان الجر خلای دوز الا اندر زروع اول خوف ما قدرنا معذاره این ان اخذ رزق علا ازالت بی جمعی الاحوال افزن. حرف ما اینه که احتمالا از زمان شیخ صدوق یا قبلش یه برداشتی به دقت قطعه اینچه بگم شیخ صدوق وقتی میگه کراهت این طور نیست که حرف پایده اوامونجیه مثلا مکاسب مغنه ولا و لا برس به العجر علاله و قضا به ایمان و تبر و آبزالکه افضل و اغرب الالله تعالی به قطعه اینه در مکاسب مراسم صلاح همال مخوف و کسب و نوه اهل دین به و کسب به هتیام و لعجله علیه به این معلوم میشه که اون اسنادهای مهم خفه رو همیشه علیه دهکده ها داده میکنه ظاهری وسیع ماست که ما میبینیم یا دست کار میکنه این احتمالا مشایخ بومیه حدیث بگم که آمده از حرمت حمله بر کراهت شده بعد این کراهت مثلا شیخ مفید هم میشه به بخلاد هم میره دقیق برامیسی خیلی عجیبه این کراهت قبول میشه سلا رو هم قبول میکن این اون نکته فندیس که ما نهاز در سخشیه همیشه که ارتکازات مختی وجود داره که ابتداعا خیلی واضح نمیشه حالا این چطور شد در این فتره ما بین کلینی و شیخ صدور این ربایت همه بر این معنا شد یه مجموع زیادیش بر ما مجهوره اما من این تنبیه ها و تنباه ها را عرض می کنم شاید بتونه این مثلا یک صفحه جدیدی رو برای ما باز بخواست این راجعه به این ربایت مرحوم ساعت و ساعت که ارتفادش که که هم ظاهر خود از اطفاقه ما هم مثل آه خوبی فرزن اشکال داره هم عجر هر اشکال در هم رزده و این هم وجوه هم داره باید و انصافن هم همیزو که شیخ هم داره که سلطان ظاهر در سلطان جوره انصافن هم داره باید در سلطان جوره خیلی حقیقه خیلی حمد واضحیه به نظر من خیلی توجیه روشنگه و که خود من یه مشکلی دیگه در این رواز کرده و این چه من نفهمیدم چرا این سؤال انفاز بین این. چون خوب خیلی این بینه که خوب دقیقه ظاهرش یک جوره و اکیه خوب لفت میکنیم این یک فتواهی بوده این همون فتواه بوده در روایات ما اشاره بشده یه مردارش هم هرد شده این خیلی مسئله مهم نیست این یک است که خیلی اهمیت داره و این منشه خیلی اشتباهات بعدی شده من مثال را رو سابقاً کردم، کرده است همین روایت معروفی در باقه حلال هست که این شهد اهل و بردن آخر فلیغز فلیغز یومن معاهده یا این شهده اهل و آخر یک صدری داره و در فتاغای حنفی ها بینده اگر اون صدر ملاحظه بشه با اون روایت در روشن بشه اصلا رب که به این موضوعی که آی خویی فرمیدن نداره مثلا آلا میگه یه داره یا بایدن شخصی میشه آی خویی به این حدی به اطلاقش در که در هر شهری که ماقوریت بشه برای تمام شهر اونجا اصلا این متن یک ذی داره اون ذی متأسفانه در متون ما حذف شده و شرح هم دادیم که هست اون ذی مضر نیست اگر اون صغر و ذی با هم دیگه بررسی بشه اصلا روایت به کل عن از این مسئله کارو خیلی می‌خوام بلکل کل از مثلا روایتی داریم که اگر کسی از کسی پول بخواد بعد شراب و قضای دین ملو کرد اشکال از اصحاب ما قبول کرد و چند تا روطان ها سر صورت یک مسلمان برای مسلمان برش قیل حرامه و باطل هم هست اگر خراب مالک مالیت اون نمیشه معاملش هم باطله اما اگر فروح و قضای دین مال کرد اشکال مداره خیلی, خیلی فروح ما ارز این حکم بینه در مدرزانت و کبرای مالک بلیه نگینه لیکن توش نداره یک مردی داری یکی از اهل زمه چطور؟ تو تمام در باید ما اهل رجوع توش برد. اما این در فتحای اهل زمه در فتحای مالک به عنوان اهل زمه یعنی شما اگر از یک مسیحی پول میخواهید اون اگر آمد شراف به شما داد نمیشه قضای ده میشه شراب رو شارعه بخارشانکیت اما اگر گروه شما شراب رو خروه پول شراب رو داد برای قضای میشه این فتوای ماله ده ماله. روایت ما همینه توش به جایی کلمه همه بزرگ زنی هم دیگه اصحاب اطلاق داره ولی مسلمان شراب ده روشه قضای ده این چرا سر بگنه ما اگر شما این مسلمان بینش باطله اصلا پول مالک میشه اگر به میشه نزا هموندن از دی اصلا همه موقعه نیست اصلا مطلب رو خوب در قد بکنون این هم به خاطر این است که روایت اهل سنت نداره این اشتهاد مالکه صرف اشتهاد مالک اینه چون میگه مسیحی یا یهودی‌ها که در زمان پیمن بودند. چراب رو میروختن پول زنه شد و جذیهشون رو بررسولاه میدادن خود چراب رو بررسولاه برنه جذیه رو کنید رویزد برده خبروشنسون برده میگه اونجا چی بود؟ اونجا در زنه شد به دولت اسلامی بود میگه فرق نمیکن اگه زنه بود به شخص نیصد دولتش که فرمه نکته پرگیره با مسلمات این امار مفاید هر یکی درست؟ یه ضروره قصف کردن حق مارس داره جامعه یعنی مقداری از درست آمده بیرون حق جامعه باشی نه نه نه نه حق ماره محمد سلم آمده در قصف حالی خب یه ما یک ذرافت های عجیب وجود داره من به نظر این مسئله چیز دیگریه و امقاض بین قریته بین هیچ نقصه نداره احتمال میناسه می‌دونن ای. که ما فرمایمارد، از اولی، وقت سوال از یک نکته دیگری، این که علمای معالم فهمیدن، کلمه بین قریفه نمیشی. بین چی؟ بین قریته بین دو ده. ده. بین طریقه از, فرقه از فرقه نسخه که من این کامپیوتر خیلی کافیه چاپ کنم که خیلی نسخه نوشته وقت بین طریقه که این احوانه. بین دو گروه مثلا دعوای سو. اما قاضی بین قریته بن دو تا شهر دعواس بن دو تا روستا دعوا چه باید؟ میشه دیگه بن دو تا علی دعوا بس چه فایده قضاوت هست چه قضاوت میشه طرفی گیر دیگه سنالو نمیگه ده هم میشه چه نقطه ایران نقطه چیه نقطه الان اخذ و قضاوت وسط بین قریهتين باشه قریه وارد میشه نقطه منه بو حالا زیر واقعی دیگه میگم این واقعه اگر مرادی که در خارج یک و زیاده بنای علمای ما درست اون هست هر جا قیب در سوال باشه تاثیر نداره قیب در جواب باشه تأثیر داره مفهوم داره اینجا قیب در سؤال آنجا بین دو این قریته تأثیری نداره من محالی اون چه نفتهی داره چه سوال بین قریته میکنم احتمال احتمال میدم من خوب بسن مثل همون قصه ماله. ان رجل اللي عنده انه خبا الخم این یک فرض یک مسئله ای اصلا یک نکته دیگری داره نه نقصش اخذر اخبر قضا کلمه بین قیافه من هرچی هر هست بیشتر بود روز بود فکر کردم فکر من به جایی نرسید قضیه اون خاطر من این نکته نکته ای بین این صوری نه هر یه جزء القاضیانی افضل رزنا سلطان خویم طرف منو به شکایت می‌کنن ببینید شما چه گفتیان که درگرد. این چنین اکسیدره نقطه... که دارید یعنی نه نه مطلب و کلام پول عهد به رزق برگذار. من به نظرم باید مراجعه بشه این سری دارید ببین فکر نمی‌کنم قابل حل باشه. شما این بگو شما صاحب یک این چیزایی ببینید عزیزی. আচ্ছা ببینید سونیا بودی یه خرج خاصی بوده ولی نه به عقل خیلی مسئله واضحه شیخ ابو عبد قاضی خودش سلطان رز بین کاری شاید تو درس این قاضی ظهور نمیکنه به هر حال من فعلا هنوز در قبال و اما هم نظر با مرحوم شیخ و استاد کربل هر میشه در قاضی جور و جز اموال جوره تا اون رو هم باز با خانه. چون شیخ صدوق گفته کراحت چون در از افراد برایشون تصدیه قضاقت از درده سلطان جور جایزه همسون که شیخ صدوق در مدفع هزن من بیت الماد یا روایت هم به برکراحت بکنیم که مرحوم صدوق فرمونده به اده از خواه هم یا بگیم واقعا روایت یورد به این محضاحتشون بین قریته من نمیتونم این مثلا قاضی بوده که خودش مردم رو تنین این باز میدرسه از سلطان زیادی می‌گرفت زیادی میگرفه نمیم کنم نمیم کنم نمیم کنم سوال چیه چرا؟ شرا... شاید اصلاً دیگری بوده هر دیگری بوده این نمیم کنم این راجع به مسئله این علایه حال این روایت سوی و هم در قاضی جور بکنیم تازه قاضی جور هم بازگیری چون آقای شیخ هم کرده اما حل نمیشه. چون در بعض از نور تری اجازه دادن حتی مثل علیرضا خدیگی که وزیر دخواه خب املا حرم رو میگیرستند. و فتاهم خود میگوسم هر دل قاضی جور میتونه اگر خوفی بود، زبرتی بود، تغییر جاری که میتونه قاضی جور بشه از طرف سلطان جور. اگر جاریش باشه از به میتونی. علاوها یه تا داره میگیره. این مقداری دوباره مشکل در یا بعد میتونم اون همین وقت بشه. اما راهی که محمد صدقه برسن یا یورا رای محالا احله روایت به نظر من یک جشدی بذاره خیلی همچه سافه سافه می سوید به نظر رضایه سابه حدیث شماره دو این حدیث بسیار طولانیه و بسیار حدیث مفیدیه بسیار بسیار حدیث مفیدیسی این حدیث حدیث شماره دو اینو رو مرموم شیفتی در کتاب اصول کافی رو برده اشتباه نشه ولو در تقسیم دنائم و انفال و خمس و زکات و صدقات و این و که این رو برموم کنه این خود در اصول کافی و بابی در عبواب الهجی و باب عمال ارز خدا در انا لده امام اونجا ذکر کرده حدیث سرور از سرنده چیزی حدیث دوم از سرده انه علی مرحوم انه علی ابن ابراهیم از هم هممال ابن ایسا. هم مادر نیسته از بزرگوان اعصاب ما در کوفه هست یعنی رو سفر یه هج میره در زمان حضرت جوابیشان طرف جحفه سید میره و غرم میشه طریق جحفه بشید مرد بسیار مقدار زیادی بیراساییشان هست که با <تصف> به قوم ورده پس این حدیث در حقیقت مرهون کولینی در قومه توسف ایوال محاشم به کوفه رفته لیکن هم مادر نیسا هم بعد از حاقنا من 17 ساله از نیسا نجربه از الله علیه حدیث خیلی بابره که انصافم خیلی فوائد داره ما توی درسته بلادفقه که درسته اصلاف پیش متحدف شدیم حدود یک سال راجع به مالی مادی که اسلام نفرح کردیم و متاسطحان سال یکی من میدونم بسید این من منم خیلی کامل نیست یادم نمیاد از بزرگان مشایر اصلاف ما راجعه به اموال و اموال دولت اسلامی کتاب مستقلی نوشته باشن یکی از کتابه بسیار خود یک جده اموال ابو اوهی کنن زمان حسد حادی و حسد جوان نوشته کتاب اموال ابو اوهی و بسیار کتاب نافعیه انواع اموال رو آورده و بررسی کنن لیکن قبل از اون تا اونجایی که من بردنم از این من من استیفا هم کامل نیست اولی کسی که متعرض اموال اموال به تقسیم اموال بین اموال شیوه گیرسه میشه چهار بار میشه مثلا این موارد اداره مالی من مملکتن توصیف ابو یوسف رساله ای نوشته خطاب به رشید که معروف از به رساله خراجی چاپ شده توسط خرازی خرازی امن هم خواندن خصوص خرازی بسیار رساله خوبی که در اواخر قرن دوم نوشته شده این توقیعی که من می از علم وقت تدیمترین کتاب ما در این جهده و این بحثای مفصلی هم داره شدیم لطیف این بحثای اسلامی این مقدار زیادیش این کتاب و کتاب الانبال از او اوهی امتیاز کتاب الانبال کتاب آزی عبو یوسف ولو رواه زیاد داره حالا که اشراعی خودشم هست از اون نقل زیاد داره و این همون نقطه ایست که من عرض کردم که زمان عمر مستح شد که سنن رسولات جمع بشه یکی از سنن مهم نه رسولات در اموال بود یکی از سنن دسیار مهم خیلی با اردوش این بخش خیلی شیلین با اردوشه با سننی ها مزید بخش داریم با خود ماها همونتون از سفانه بین این صفت در وین شیعه مستح نشده مقدار زیادی تو به رفت بکنیم مسادر یعنی ما در مسائل مالی و اینها غیر از خود خ قی روایات قوی که از صاح کرد، مجموعه نامه که سپیر بعد از صلح حدیبیه نوشتن به یمن نوشتند خیلی از مسائل مالی اونجا مطر کردن اون نامه ها خیلی داشتش الان در کتاب اوواد او اوت آمده. و اینی که نوشتن اول عبدالعزیز عزیز در سال سر هجری در فکر افتاد شدن و سو جمع بکنن خیلی همین نامه ها هستند. چه می باید روی من ع همیشه؟ هنر مهم ما ریشیابی و رسیم به اون منابع اولیه است. اون منابع اولیهش مسائل مالی منابع مختصری تو مکه نازده حتی آیه زکات تو مکه است. اما موظمشون ها آیات مثل خمس و انفال و فیرونها توی مدینه نازده شده و این مقدار زیادشون سنن رسول اللهه که شهر خاصی داره پس ما الان در دنیای اسلام قدیمترین نوشته ای که در انواد داریم کتاب رساله هرچند که راجیس نشه گوزش چیز دیگه را مال ابو که اواخر قرن دومه بنظر سال 270 تا 280 به یه که این نوشته که ما داریم همین ها هم. این که حدود 4 صفحه بنظر رساله به بنظر رساله بوده همین همین, همین هم. حدود است که 4 صفحه بسیار طولانیه و انواع اموال داده، خیلی مهمه متاسفانه افتل شده ازش یعنی یعنی زیاد روش کار نشد بسیار روات لطیفه مثلا اینکه از مهمترین رواتی که خب شیش صحواد میشه نصف سر همین سر شده همین این ساله تو همین آماده تو همین روات ابستر مرسله حماده نیسان خیلی فواید داره من. برای شما شرح تاریخی گفتم که معلوم بشه اخواب ما چه کارهای بزرگی رو انجام نکر که ارزش تاریخی ارزش داره من تا وجود این دیدن رساله ابو یوسف انسفان در تاریخی عرضش, دارده. من رسالی در تاریخ عرضش داره چون با باهون موارد ماهیت دولتش نوشتن و مقابل اون شدن ابو یوسف از ما میرسه من نمیسنم مقابل اون موسی دیگران شاه مبار این هم زمانه تو هم یادش که بود ابو یوسف قاضی شد ابو حنیفه قاضی شد نظام کشته شده اهمان که سم اما ابویسوف رفتی از و خدا شده بالا اصلا نشوه مذهب ابو حنیفه بیشتر از ابو حنیفه ابو حنیفه به این احرسانه خیلی،, خیلی زیاد منفورش از ده حدیث بوده منفوره ابو حنیفه یه نقداری زیادی فرک عثمانی رو از هرشت تحلیف شدن یه نقداری زیادی فرک های به خاطر از به تحلیف شدن این حدیث بسیار حدیث لکیفیت اشتردن مضمون شیف کولینی او رو کامل به ها کامل حدود این میشه مبارنه کرد با رساله ابو یوسف تاریخی یه رساله است در مسارف هم مسارف هم مسرر و هم مصرف اموال امواه اموالی در دنیای اسلام هست زخان، خمس مسدرش کجاست، مسرفش کجاست روایت سو خود در قفل کنید سهد شیخ کلنی که ارسال داره بیشتوید نوشته بعد دنشن ورواه و شیخ همه محله حالا من تصادف این اگر چاپ آلو بیت باشید نه نه نه نه امسافش دیدم برگه ایمشن بخواستم که همه دوزر سابه اجماله خیلی عادیه خیلی خوقداره امساف خیلی روایت درجه بالایی داره الان چرا ابو حماد اس نروید؟ علایار من چون نشد مراجعه کنم، آقای مراجعه کنه. اما مرحوم شیخ ایشون هیچ کما مراجعه، محلی محله چون از شیخ نروید. من مراجعه نکردم. اما مرحوم شیخ این حدیث رو در فقه آورده، کلینی در فقه نمی‌آورده. من یه مطلب رو چند بار عرض کردم، نمیدونم شاید شایدطور باشه. بعض از احادیث مهم هست که کلینی نا آورده در اصول. شیخ مثلا در کتاب تحضیب استفساد موزن کتابش از کافی رو فیگه کم از تحضیبی گرفته لیکن روالات و اصول نگه برده نمیم کنید چرا مراجعه نکر بیشون به اصول قسمت فرن خوب برده هر جا کلین داره دنبال کلیم اصول زیاد داره یعنی انصافا میشه با که چیز 80 تا 90 درصد بخش فروش در کتاب شهر آمده من یه اصول و پروه از اون بوده بله حالا شیخ اصول ندیده اونم برای ما انهام و احتمال این نمیدن مثلا شیخ اینو کلی تو این تو اصوله و اقام یه احادیث اینطور نیست این باشه احادیث بسیار معروف و مشغولیه شما تحجیب رو اصلا حدیث رفت رو حدیث رفت رو شیخ نیاورده چون شیخ کنین تو اصول رو باید تو اول رو ایمان رو باید این نمی‌شه به دستم من دیدم ایشو در وقت نوشتن کردی اصول رو نگف، جوروش بود اصول نگف. قول مروان صادق میگه متوازی بین اوصید. متوازی نمیزنه. خب ادعای تواصل کردی، فراموش نیست. حدیث سند آورده. اما چون اصول ابواب ایمان اصلا حدیث نیست. تو و استثنا تو, و تو شیخ کلنید. قیده عجیبه اینه اگه احابیت بسیار مرد حالا حدیت رفت تو فقیح هست چون هستم شیخ از فریخ این نرنه میکنه عضو شیخ واضحه. از فریخ نقل نگرده تو خسار شیخ حسوسی هست از اونجا هم نرنه کرده همه که در کافی هم هست باده نرنه من فکر میکنم خب چون خط شیخ صدو قبول نداشت واضحه بریشون. اما که مال میلادی شو اصول ندیده. که مال میلادی هر تارو کافی که شیفت از تازه. ندیده و دارم و یه روز دارم باور از اصول ابوا بوده اصول دارم باور تویی من شوخ کردم. شوخ سکوم امروز نیست، شیخ تویی با این که الان علمان ما تو بحث استطاعات حج میانند اما این من ده از روالات رو پیدا کردم پیش شیخ خلیمی تو اصول عورده شیخ توسین ها رو نه برده. اون چی که این خیلی مهمه این بازی مفید, مفید این رو شیخ در فقه عورده لکه نه از طریق کلینی این خیلی مهمه تاریخ طریق که مهمه علی یعنی حسد ابن پزار این نشون میده این حدیث اینگر با عربه شده این از نسخهی خود هم مادر نیسا که به قوم رسیده ابن فضال پسر هم نهاری کرده این خیلی باید داشته این در میراس های واخت فتحیه موجود بوده علی ابن حسن ابن فضال قال حدستانی علی ابن یعقوب انه عبالحسن بغداری فکر میکنم نسخه غلطه فکر میکنم چون علی ابن یعقوب همون عبالحسن بغداریه باید این تو باشه حدستانی علی فکر می‌کنم. نه باید واسه داشته عمل حسن ابن اسمایل ابن صالح سیمری که ایشون نمیشن سنگیشون آله حدثن یه حسن ابن راشد احتمالا حسن ابن راشد معروف باشه اون حسن ابن راشد اینکه ضعیفه این معروف آله حسن ابن اینکه حال رواه بودی بعضا اصحاب نامه عباده شیخ این طوره چون شیخ محضرش عوض شده در بکنید بخونی با کلیمی نظر عوض شده رواهدی بعض اصحاب نام ذکرهو عبدال صالح عبدالحسن عبدال یه نردار مایدانسر کلی بعض اصحاب نام روه دو صالح این چی یعنی اعتماق کردید اجازه یه نردار مایدانسر عباره که قدم فضال پسر یه نردار از عباره کلی نام ماریدانسر اصحاب ن... هست رواهودی. بفتره. اون وقت این متنه او برده من دیگه الان میخواهم متنه بخونم چون خیلی طولانیه ایشان مرحوم شیخ شیخ خول به حاطب این عبارد و یققه باقی تر یکون و بعد داره که ارزا و اعوان یه دین الله میخواهم به اطلاق این ترسط بکنن که رزق قاضی از ما بشه و که این متله از ما یعنوبه من تقریت الاسلام وقت اون وقت قیل از اونجه ها یک نقصیل از وقت تمام شده برای ب درکه مقال اینجا در کتاب کافی در سوم در کتاب شیخنا رحمت قائل فقيه عليه السلام امام ASCII هر متصدی معروض می‌کنه این رساله خوبی این, این خیلی مهمه زکر قال الفقيه عليه این خیلی زیبایی از اون کلیات بسیار باحره ان الله تعالی لم یکسو شیئا من صنوف الاموال ایلا وقت بستنه بود خیلی خیلی دید فعطا کل دی حقم حتی الخاصت والعامت والفقراء والمساکین و, و, و کل سن فرم ما خیلی این روایت انسان او نور کلام الله خیلی دید خاضی از شد این ما الباقی و برزار ارزاق احوانی علا و می‌کنید که می‌توانیم این را به و برسانیم؟ نه، نمی‌توانیم. این کار را به خودمان برسانیم. این به خودمان برسانیم. این به خودمان برسانیم. این کار را به خودمان برسانیم. این کار را به خودمان برسانیم. این کار را به خودمان خودم برده از خواب بله این می که این چرا بله شه خیلی بزرگه.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 ای بابا اینا دیگه بزرگان خط بلوزن اینه اینه در اشخاص مدخوشتر به بلوزن بلا نه نه نه نه نه میگه ترقب خودم یه چرماز ببینیم اینا دوست داشته در استیونش بار قامت شوالیه یه حدودی در کنار رو تک. اما است کاریش ما نداریم. اونا خیلی دو بالی خبر ندید. پای نکات دیه بین قوانین قانون نما علی. نیاز لا اعده نو داشته. ما چه باید مراجعه کنیم ان شاء الله. جادوجناب نه نه نه از شما در در Thank <laughs> <laughs> you. 24 21 21 21 21 21 21 21 که <تصفيق> شاد